دوستان در عهد جدید خداوند به ما تعلیم میده که هر کسی رو که دوست داره تربیت و تنبیه میکنه و ما میبینیم که در عهد قدیم هم این به ما نشون داده شده. ما مطالعه موضوع های نبوتی ارمیا رو شروع کردیم. ارمیا توضیح میده حتی اگر خدا قومش رو تربیت میکنه به این دلیل این کار رو میکنه که اونها رو دوست داره. حالا بیاید برای شنیدن این درس مهم با معلممون همراه باشیم. چرا یهودا تبعید شد؟ چرا به بردگی رفت؟ به خاطر همه کارهای اشتباهی که کرده بود، او به بردگی رفت. حالا در تبعید دور از وطن نشسته و استراحتی نیست. چون کسانی که بر او غلبه کردن، بر او جفا میکنند. راههای راه های سهیون ماتم می گیرن. دیگر کسی به های او نمیاد. دروازههاش خراب شده کاهنانش آه میکشند دوشیزگانش در مرارت هستند و خودش به تلخی گریه میکنه دشمنانش پیروز شدند چون که خداوند اورشلیم رو به سبب کسرت گناهانش ذلیل ساخته. اتفالش پیش روی دشمن به اسیری رفتند و خداوند برحق است چون ما سرکشی کردیم و اینکه تمامی مردم دلتنگی و نومیدی منو ببینید چون که پسران و دخترانم به سرزمین های دور به اسیری رفتن، من برای تمامی این چیزها می گیریم. از چشم من آب می ریزد زیرا تسلیدهندهی نیست و جان من از من دور است، پسرانم هلاک شدند زیرا که دشمن قالب آمده است. فرزندانم هیچ امیدی به آینده ندارند، ما سرزمین مغلوب هستیم. به کلاس دیگری از دانشکته یک کتاب مقدس خوش آمدید. ضمن برسی هامون به کتاب ارمیا رسیدیم و دیدیم که در باب 52 او در نبوتهاش گریه میکنه. او بعداً زمیمهی برای نبوتهاش می نویسه که به اون مراسی ارمیا گفته که به معنی سوگواری و ماتم هست. این جلسه رو با خوندن بخشایی از کتاب مراسی شروع کردم. کتاب مراسی دنبالهی بر کتاب ارمیا هست. در 52 باب ارمیا گریه میکنه. ارمیا به خاطر ورشد جنگ و حجوم بابلیها ها گریه میکنه. او با مکاشفه ای نبوتی حمله و غلبه بابلیها ها رو میدید که مردم رو به اسارت میبرند. او در طی این حادثه در اورشلیم زندگی میکرد. کتاب ارمیا در حالی تموم میشه که ارمیا هنوز در سرزمین یهودا هست. تمام مردم یهودا به جز پیران و افراد علیل به اسارت رفتن. به او اجازه داده شده که در سرزمین یهودا بمونه ظاهرا او بعد به مصر کوچ کرده و بنا روایات بعضی ها میگن که او در مصر شهید شده و دیگران میگن که ارمیا بالاخره به بابل رفت تا برای قوم یهودا که اونها رو خیلی دوست داشت کنه بعضی ها میگن که ارمیا آخرین روزهای عمرش رو در خرابه های سرزمین باقی مانده برای یهودا گذران کتاب مراسی رو ارمیا بعد از اینکه مردم به اسارت رفته بودن نوشت کتاب مراسی زمانی نوشته شد که اورشلیم شهری متروکه بود کتاب مراسی ارمیا بسیار با مسمى اسمگذاری شده نبی گریان هنوز هم گریه میکنه چون سرزمین فتح شده و مردمی که او دوستشون داشت کسانی که از قتل عام جان سالم به در برده بودند به سرزمینی دور به بردگی و اسیری رفته بودند یکی از مشکلاتی که او در کتاب مراسی اظهار میکنه که از طرف انبیای دیگری مثل هزقیال و دانیال مطرح شده این واقعیت بود که اونها ایمان داشتند معبد خدا جایی بود که حضور خدا در اون ساکن بود جلال خدا عملا در قدس الاقداس در معبد سلیمان در اوشلیم ساکن بود خدای قوم خدا که در بابل زندگی میکردند کجا قرار داشت خدایی که اونها دوست داشتند و او را می پرستیدن در اورشلیم بود به این دلیل که دانیال وقتی دعا میکنه رو به اورشلیم دعا میکنه دانیال ایمان داشت که خدا در اورشلیم هست یکی از مشکلاتی که انبیا در اسارت داشتند این بود که انبیا خدا از خدا جدا بودند اورشلیم عملا شهر خدا برای اونها بود و اونها احساس میکردند که از شهر مقدس و خدای قدوسشون جدا شدند وقتی که ارمیا کتاب مراسی رو مینوشت بر بالای تپه نشسته بود اون مکان امروزه به نام غار ارمیا معروف است جالبترین چیز در مورد این غار اینه که اون بر بالای ای که جلجتا گفته میشه قرار گرفته غار ارمیا درست جایی بود که عیسی در جلجتا مصلوب شد و برای گناهان دنیا مرد روایات حاکی از اینه که ارمیا این کتاب کوچک به نام مراسی رو در اونجا برشته تحریر درآورده این برای من خیلی مهیجه، چون به این معنی بود که در همین نقطه ارمیا دعاهایی مثل این کرد. چه کسی میتونه تو را از نوع بنا کنه و در این نقطه بود که خدا بر روی زمین آمد و نه تنها یهودا رو احیا کرد، بلکه تمامی دنیا با مردن او به خاطر گناهان این دنیا در همان جایی که ارمیا دعا کرده بود نجات یافتند. این مسئله کتاب مراسی رو بسیار حیجان انگیز کرده. کتاب مراسی به لحاظ ادبی یک شاهکار شعری هست که شامل پنج شعر یا مرسیه در پنج باب هست. هر باب شعر یا مرسیهی جداگانه هست و چهار تا از این اشعار اشعار منکسری هستند. اگر شما در زبان خودتون اشعار منکثر دارید، بدین معنی که اولین بیت با آ شروع میشه و دومین بیت با به و به همین نه تا یه ادامه پیدا میکنه. اشعار به چنین اشعاری گفته میشه که بر اساس حروف الفبای عبری تنظیم شده. در باب سه، شما سه بار الفبای عبری رو مرور می کنید. باب پنج منکسر نیست، اما دیگر باب ها همه منکسر هستند و اونها اشعار بسیار زیبایی هستند. و به این خاطر کتاب مراسی یک شاهکار عدبیه. هر هرچقدر هم که کتاب مراسی به لحاظ ادبی زیبا باشه، پیام الهامی کتاب مراسی هست که جایگاه اون رو در کتابخانه‌های روحانی تعیین می‌کنه. پیام الهامی حول محور فاجعه وحشتناک حمله و اسارت ها دور می‌زنه. اون پیغام به صورتی برجسته و با احساساتی عظیم مطرح شده. او به تلخی گریه می‌کنه. این قوم محبوب او هست. و حالا در بوپوهه دلتنگی‌های اورشلیم دختر سهیون روزهای خوش گذشته رو به خاطر میاره. او شادی‌های ارزشمندی را به یاد میاره که در گذشته داشته قبل از اینکه دشمن او رو هم بشکنه و کسی نبود که به او کمک کنه. دروازه‌های اورشلیم در هم شکسته. تمامی قفل و پشت بند شکسته چون خدا اونها را شکسته. پادشاهان و شاهزادگان او به سرزمینی دور بدون معبد به اسیری رفتن. بدون قانون الهی که بر اونها حکومت کنه یا رویای نبوتی که اونها را هدایت کنه. مشایخ اورشلیم در سکوت روی زمین اند و به خاطر غم و اندوه و ناامیدی پلاس پوشیده خاکستر بر سرشان میریزند. دوشیزگان اورشلیم با شهن ساری سربزی رفکنده اند انقدر گریه میکنم تا هایم خشک شود. قلب من شکسته روح من فرو پاشیده وقتی میبینم که چه بر سر قومم آمده انقدر گریه میکنم تا هایم خشک شود. قلب من شکسته روح من فرو پاشیده وقتی میبینم که چه بر سر قومم آمده کودکان کوچک و بچه های لاغر ضعیف شده و در کوچه ها میمیرند. اونها گریه میکنند و صدا میکنند مادر، در ما غذا میخواهیم. اونها گریه میکنند و در کوچه های شهر بیهوش میگردند و جانهای خیش را به آغوش مادران خود می ریزن. نفس هاشون تنگ میشه و زندگیشون مثل مجروحان جنگ به پایان میرسه. آیا تمامی دنیا تا کنون به خود چنین این ای دیده؟ ای اورشلیم، تو را به چه چیز تشبیه توانم کرد؟ چطور می توانم تو را تسلی بدم؟ زیرا که شکستگی تو مثل دریا عظیم است و کیست که به تو را شفا دهد؟ انبیاء تو دروغ و باطل برایت دیدند و گناهانت را کشف نکردند تا تو را از اسیری برگردانند. بلکه وحی کازب و اسباب پراکندگی برای تو دیدند. تمامی رهگذران بر تو دستک میزنند و تو را مسخره میکنند و میگویند آیا این شهری است که آن را کمال زیبایی و ابتهاج تمام زمین می‌خواندند؟ از عذاب‌های اسارت و مغلوب شدن رو با جزئیات بیشتری شرح میده. چگونه طلا زنگ گرفته و زر خالص منقلب گردیده است. سنگهای قدس به سر هر کوچه ریخته شده، چگونه پسران های سهیون که به زر ناب برابر می بودند مثل ظروف سفالین که عمل دست کوزگر باشند شمرده شدند. شغال ها نیز پستانهای خود را بیرون آورده بچه های خیش را شیر می دهند اما دختر قوم من مانند شتر مرغ بردی بیرحم گردیده است. زبان اطفال شیر از تشنگی به کام ایشان می چسبد و کودکان نان میخواهند و کسی به ایشان نمی دهد. آنانی که خوراک لذیذ می خوردند در کوچه ها بی آنانی که در لباس قرمز تربیت یافتند مزبله ها را در آغوش می کشند. زیرا که اسیان دختر قوم من از گناه صدوم زیاده است که در لحظه ای شد و کسی دست بر او ننهاد نزیرگان او از برف صافتر و از شیر سفیدتر بودن بدن ایشان از لر سرختر و جلوه ایشان مثل یاقوت کبود بود اما صورت ایشان از سیاهی سیاهتر شده است که در کوچه ها شناخته نمیشوند. پوست ایشان به استخانهایشان چسبیده و خشک شده مثل چوب گردیده است کشتگان شمشیر از کشتگان گرسنگی بهترند زیرا که اینان از عدم محصول زمین مجروح شده کاهیده میگردند. زنان مهربان اولاد خود را میپزند و به دستهای خیش و آنها در هلاکت دختر قوم من قضای ایشان هستند خداوند غضب خود را به اتمام رسانیده، حدت خشم خیش را ریخته است و آتشی در سهیون افروخته که اساس آن را سوزانیده است. پادشاهان جهان و جمیع سکنه ربع مسکون باور نمی کردند که عدو و دشمن به دروازه های داخل شود. به سبب گناه انبیا و گناه کاهنانش که خون عادلان را در اندرونش ریختند مثل کوران در کوچه ها نوان می شوند و از خون نجس شده اند که لباس ایشان را لمس نمی توانند کرد. میراس ما از آن قریبان و خانه های ما از آن اجنبیان گردیده است. ما یتیم و بیپدر شده ایم و مادران ما مثل بیوه ها آب خود را به نقره می نوشیم و هیزم به ما فروخته می شود. تعاقب کنندگان ما به گردن ما رسیدهاند، و خسته شده راحت نداریم با اهل مصر و آشور دست دادیم تا از نان سیر شویم. پدران ما گناه ورزیده نابود شده اند و ما متحمل اسجان ایشان گردیده ایم غلامان بر ما حکمرانی می کنند و کسی نیست که از دست ایشان رهایی دهد از ترس شمشیر اهل بیابان نان خود را به خطر جان قیش می یابیم پوست ما به سبب سموم قهد مثل تنور سوخته شده است زنان را در سهیون بی اسمت کردند و دوشیزگان را در شهرهای یهودا سروران از دست ایشان به دار کشیده شده و به مشایخ اعتنا نمودند جوانان سنگهای آسیا را برمیدارند و کودکان زیر بار هیزم می افتند مشایخ از دروازه ها نابود شدند و جوانان از نغم سرایی خیش شادی دل ما نیست شد و رقص ما به ماتم مبدل ما گردید تاج از سر ما افتاد وای بر ما زیرا که گناه کردیم از این جهت دل ما بیتاب شده است و به سبب این چیزها چشمان ما تار گردیده است یعنی به خاطر کوه سهیون که ویران شد و روباهان در آن گردش می کنند اما تو یهوه تا عبدالاباد جلوس می فرمایی و کرسی تو تا جمیع دهرا خواهد بود پس برای چه ما را تا به ابد فراموش کرده و ما را مدت مدیدی ترک نموده ای ایه و ما را به سوی خود برگردان و بازگشت خواهیم کرد و ایام ما را مثل زمان سلف تازه کن وقتی که کتاب به کتاب بررسی کتاب مقدس را ادامه میدادید من دائما می میگفتم که این کتاب کتاب مورد علاقه من در کتاب مقدسه هر کتابی رو که تعلیم میدم کتاب مورد علاقه منه اما صادقانه بگم کتاب مراسی کتاب مورد علاقه من در کتاب مقدس نیست. فکر نمی کنم این کتاب مورد علاقه هیچ کس باشه و یادمه که خود ارمیا هم زیاد این کتاب را دوست نداشته. درست زمانی که شما فکر می کنید زمان قصه و اندوه و پریشانی و بلا و فاجعه و ناراحتی هست ارمیا شما را به تعجب وامی داره. در تاریک ترین مرحله های ناامیدی و پریشانی نور و امیدی میتابه و شما مکاشفه نبوتی بسیار زیبایی رو میبینید که معمولا نبوتی مسیحایی هست این بار نیز این اتفاق در باب سه کتاب مراسی میفته در باب سه رمیا به بدترین نقطه مراسی میرسه و میگه مرا به تلخیها سیر کرده و مرا به افسنتین مست گردانیده است دندان‌هایم را به سنگ ها شکسته و مرا به خاکستر پوشانیده است تو جان مرا از سلامتی دور انداختی و من سعادتمندی را فراموش کردم و گفتم که قوت و امید من از یهوه تلف شده است. مذلت و شقاوت مرا افسنتین و تلخی به یاد آور. من فراموش کردم که شادی چیه؟ تمام امیدم از بین رفته، قوت من از بین رفته زیرا خداوند مرا ترک کرده. خداوند تلخی و رنجی را که بر من تحمیل کردی به یاد آور زیرا من نمیتوانم این سالهای وحشتناک را فراموش کنم جان من همیشه شرمسار خواهد بود حالا به نظر میرسه که او در پایین ترین شرایط زندگیش هست اما اینجا میبینیم که او امیدوار میشه و میگه هنوز بارقه امیدی هست دلسوزی او هرگز تمام نمیشه این فقط رحمت خداوند هست که ما را از نابودی کامل حفظ میکنه از رعفتهای خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمتهای او بیزوال است. آنها هر صبح تازه می شود و امانت تو بسیار است و جان من میگوید که خداوند نصیب من است. بنابراین بر او امیدوارم خداوند به جهت کسانی که بر او توکل دارند و برای آنانی که او را میطلبند نیکوز. خوبه که انسان امیدوار باشه، و با سکوت انتظار نجات خداوند رو بکشه. برای انسان نیکوس که یوغ رو در جوانی خود برداره به تنهایی بشینه و ساکت باشه زیرا که او آن را بر هاده است. دهان خود را بر خاک بگذاره که شاید امید باشه. رخسار خودش رو به زننده ها بسپاره و از خجالت سیر بشه زیرا خداوند تا به ابد او رو ترک نخواهد کرد. چون اگر چه کسی رو محزون بکنه لکن بر حسب کسرت رعفت خود رحمت خواهد کرد چون که بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند و محزون نمی سازد می بینی درمیا اینجا در وسط باب سوم چیکار میکنه در جایی بالای تپه جلجتا که بهش قاره ارمیا میگن نشسته و قطعا با ناامیدی و مرسی سرایی حوادث غمانگیز انگیز غلبه و به اسارت رفتن بابل رو می نویسه درست در همونجا در اوج ناامیدی او مکاشفه مکاشفه‌ای از خدا دریافت می‌کنه او میگه یک بارقه امیدی هست بارقه امید چیه یکی از ترجمه‌ها اون رو اینطور بیان کرده خدا هرگز از محبت کردن به ما دست نمی‌کشه شفقت او تموم نمیشه. و یا اینطوری گفته شده که محبت و مهربانی او هر روز تازه میشه. چیزی که اونجا توی اون غار کوچک بر ارمیا آشکار شد این بود که خدا هرگز از محبت کردن به ما و از دوست داشتن ما دست نمیکشه ما هرگز با گناه از محبت خدا محروم نمیشیم. او میگه امید ما محبت خداست وقتی که اون اسیران در قول و زنجیر داشتن به سمت اسارت می ارمیا پیام باشکوهی رو برای اونها موعظه کرد او گفت ای ثروتمندان حکیمان قدرتمندان به ثروت و حکمت و قدرت خودتون فخر نکنید به خدا فخر کنید تنها واقعیتی که الان براتون مونده خدا هست شما باید خدا را بشناسید و در او کمال پیدا کنید او به اونها گفت که چطور این کار رو بکنند به اونها گفت شما میتونید خدا را رو از روی نشانه های او بشناسید نشانه های او روی زمین تجلی او در آسمان هستند وقتی که به اون نشانه ها نگاه میکنیم او اونها رو اینطور برشمرده ادالت، پارسایی و محبت بیقید و ش اینجوری شما میتونید خدا را بشناسید. وقتی که به اسارت بابل میرفتند، این امید واقعی اونها بود. خدا هرگز از محبت به ما دست نمیکشه حالا این جالبه که او وقتی این مکاشفه رو میگیره که خدا هرگز از محبت به ما دست نمیکشه درست همون جایی نشسته که بعدها میبینیم خداوند تنها پسرش رو به عنوان بزرگترین محبت به ما بر روی صلیب قربانی میکنه. تا ما به نحوی جایی روزی بفهمیم که خدا ما رو نجات خواهد داد. درست در همون نقطه در اوج ناامیدی اون حقیقت بر ارمیا آشکار شد. ما شاید ایمان نداشته باشیم. شاید از جمله کسانی باشیم که خدا را باور نداشته باشیم. اما این معنیش نیست که خدا امین نیست. به اون معنی نیست که او اجازه میده ما ناامید بشیم. خدا همیشه امینه. او مطلقا قابل اعتماده میتونید روی او حساب کنید خدا همیشه و به هر ترتیب ما رو دوست داره من شبانی رو میشناسم که دو تا لوحه داشت یک بار او اونها رو به دفتر من توی کلیسا آورد اما وقتی که بچه ها بزرگتر میشدن او توی خونه به اونها بیشتر نیاز داشت یکی از اونها بزرگ بود و روش نوشته شده بود خدا به هر حال شما رو دوست داره او پنج بچه داشت وقتی بچه ها شب می اومدن خونه شاید کمی دیرتر از وقت معمول شاید جایی رفته بودند که نباید میرفتند اولین چیزی که او میخواست وقتی وارد می شدن ببینن این بود که خدا به هر حال شما رو دوست داره شاید در اون موقع خود شبان در خواب بوده اما میخواست که اونها بدونند. مهم نیست که اونها چیکار میکردند خدا به هر حال اونها رو دوست داره به محض اینکه اونها چراغها رو روشن میکردند آنها پلاک کوچکتر رو رو میدیدند. اون در قابی با حروف درشت و زمینه ساتن سفید نوشته شده بود و مضمونش این بود. من به هر حال شما رو دوست دارم. اینها دو چیزی بودند که میخواست بچه هاش وقتی وارد خونه میشن بدونند که به هر حال خدا اونها رو دوست داره و من هم به هر حال اونها رو دوست دارم. این چیزیه که خدا به ما میگه امروز به محبت او پاسخ مثبت بدید. وقتی که کتاب مقدس رو بررسی میکنید مرتبا با محبت آگاپه خدا برخورد می‌کنید هر چیزی که ادعا می‌کنه محبته از جنس این محبت نیست وقتی کتاب مقدس میگه خدا محبت بدین معنی نیست که او هم مثل چیزهای دیگه‌ای هست که ادعا می‌کنن محبته. کتاب مقدس میگه که خداوند یک روحه حالا این به این معنی نیست که همه چیزهای روحانی خدا هستند هر چیز که روحانی هست روح القدس نیست اما یک روحی هست که خداست و به همون ترتیب هر چیزی که ادعا میکنه محبته خدا نیست اما یک نوع محبت هست که خداست محبت خداست و خدا محبته در اول قرنتیان باب 13 پولس رسول بر این نوع محبت به زیبایی تمرکز کرده خلاصه چیزی که پولس از این نوع محبت میگه که خدا هست اینه پولس میگه من نمیتونم بگم اون چیه اما میتونم بگم که چطور عمل میکنه خدا به ما نمیگه که محبت چیه اما به ما نمونه ای از تقوا میده و میگه اگر شما این محبت رو که خدا هست داشته باشید باید اینجوری رفتار کنید وقتی که شما اون پانزده خصوصیت رو کنار هم قرار میدید ترکیبی از اساس ذات خدا رو به دست میارید چیزی که پولس درباره این محبتی که خدا هست میگه نمونه چنین چیزیه او اول میگه این محبت فنا پذیره اگر شما محبت خدا رو در قلبتون برای کسی داشته باشید میتونید به با اونها بگید شما هیچ کاری نمیتونید بکنید که محبت من نسبت به شما متوقف بشه چون من شما رو با محبت خدا دوست دارم محبت خدا محکم و قوی است اون فناناپزیره پولس همچنین میگه که محبت خدا بی قید و شرطه محبت انسانی فناناپذیر نیست چون اون مشروط است به عبارت دیگه ما با انگیزه ای محبت می ما مردم رو معمولاً بر اساس عمل کرده اونها محبت می و شاید می‌گیم اگر شما این کار بکنید و اون کار بکنید و چهل تا کار دیگه اون موقع من شما رو دوست خواهم داشت. این نحوه محبت اکثر انسان هاست. ما محبت می چون انتظار تلافی داریم. اگه در مقابل محبت نبینیم از محبت دست می کشیم. تشویقتون کنم کاری بکنید. لیستی از کسانی که دوستشون دارید تهیه کنید و ببینید چند نفر در لیستتون هستند که هیچ کاری برای شما نمیکنند. هرگز کاری برای شما انجام نمی دن. تمام کاری که می کنند اینه که به شما فحش بدن وطف بکنند و لعن و نفرین کنند با این حال هنوز در لیست کسانی هستند که شما دوستشون دارید چند نفر مثل اینها توی لیستتون دارید ما کسانی رو دوست داریم که ما رو دوست دارند ما بر اساس عملکرد محبت می کنیم. محبت ما مشروطه اما محبت خدا مشروط نیست. به گفته پولوس محبت خدا فنا چونکه چون که بلا محبت بلاشرط و فنا ناپذیر خدا الهامی هم هست. وقتی شما مردم رو با محبت خدا محبت می کنید و اونها الغا می کنید که در مورد خودشون بهترین ها رو باور کنن. این چیزیه که منظور پولسه وقتی میگه محبت همواره ایمان دارد و همیشه امیدوار است به این دلیلی که محبت خدا میتونه همه چیز رو تحمل کنه محبت آگاپه همیشه برای شخص مورد علاقه به بهترین ها امیدواره و به بهترین ها ایمان داره وقتی کسی رو اینجوری محبت کنید بعد از گذشت زمانی اونها هم شروع میکنن به ایمان داشتن و امیدوار بودن به بهترین ها برای خودشون خیلی ها منو اینجوری محبت کردن من وقتی جوان 19 ای بودم به خدا ایمان آوردم احتمال زیاد با فارغ و تحصیلی من موافقت نمی کردن. من صفری بودم که حتی دیوارهای دایره صفر رو نداشتم. من یک هیچ بودم و این را می دونستم. من به کسانی که منو محبت کنند نیاز داشتم و خدا را شکر می کنم برای مردی مثل شبانم که منو محبت کرد. او به هر حال منو محبت کرد. او منو با محبت آگاپه محبت می کرد. منو بلا شرط محبت می کرد. منو بر اساس عمل محبت نمیکرد محبت بی قید و شرط و فنا و پذیری که او نسبت به من داشت الهامی هم بود. شبان من همیشه می من به عاقبت دیگ امیدوارم. من تعجب می کردم که او چرا به عاقبت من امیدواره. اما او خوشحال بود که به عاقبت من امیدوار بود. زمانی به جایی رسیدم که شروع کردم به باور کردن. محبت آقابه یعنی این از این نظر اون الهامی هست. پولوس همینطور به ما میگه محبت آگاپه همون محبتیه که میگیم خداست که قطعا غیر قابل مقاومته. من به عنوان کسی صحبت میکنم که محبت شدم. بالاخره محبت آگاپه مقاومت ناپذیره. به این دلیله که محبت آگاپه هرگز شکست نمیخوره. ارمیا قرنها قبل از پولس رسول زندگی میکرد. او در قارش نشسته بود درست همون جایی که قرار بود عیسای مسیح برای گناهان این دنیا بمیره نوح سرایی میکرد. گریه می کرد و به شدت ناامید بود اما بعد این مکاشفه زیبا رو دریافت کرد خدا هرگز از محبت کردن به ما دست نمیکشه خدا به ما وفادار حتی زمانی که ما به او وفادار نیستیم خدا یا چون که تو محبت هستی و به خاطر وفاداری که در محبت به ما نشون میدی من ایمان دارم روزی ما رو نجات خواهی داد در اون نقطه در محل قار ارمیا خدا آمد و برای گناهان دنیا مرد تا اینکه تمام مردم دنیا بتونن برای او بازخرید خرید بشن. این زیباترین بخش از پیام الهی کتاب مراسی ارمیا هست. در مراسی باب سه شما همینطور این کلمات رو میبینید. کیست که بگوید و واقع شود اگر خداوند امر نفرموده باشد؟ آیا از فرمان حضرت اعلی هم بدی و هم نیکویی نمی نمیشود؟ پس چرا انسان تا زنده است و آدمی به سبب سزای گناهان خیش شکایت کند؟ راه های خود را تجسس و تفحص بنماییم و به سوی خداوند بازگشت کنیم. دلها و دستهای خیش را به سوی خدایی که در آسمان است برفرازیم و بگوییم ما گناه کردیم و اسیان ورزیدیم و تو عفو نفرمودی. آنگاه خداوند از امخهای سیاه چال اسم تو را خواندم آواز مرا شنیدی پس گوش خود را از آه و استغاثه من مپوشان در روزی که تو را خواندم نزدیک شده فرمودی نترس ای خداوند دعوی جان مرا انجام داده و حیات مرا فدیه نموده ای وقتی که ارمیا این امید بزرگ را اظهار میکنه همون حقیقتی رو به ما میگه که در کتاب ایوب متوجه شدیم در مراسی ارمیا باب 3 اون میگه چیزهای خوب و بد از طرف خدا میاد چرا یک انسان زنده برای تنبیهی که به خاطر گناهانش میشه شکایت کنه بیایید راههای خودمون رو امتحان کنیم و به سوی خداوند خود برگردیم این بخش بزرگ پیغام ارمیا هست یادتونه که گفتیم قوم خدا بدپرستان پرستان بیچاره‌ای بودند گناه اونها حد و مرزی نداشت و این شامل کاهنین و انبیا هم میشد در اوایل خدمت ارمیا در دوره یوشیا اونها به جایی رسیدند که فراموش کردند چیزی به نام کتاب مقدس وجود داره. و وقتی اونها معبد رو تعمیر می تومارهایی از کتاب مقدس رو پیدا کردن از را از نسل مردی بود که تومارها رو پیدا کرد و او به بیداری روحانی عظیمی کمک کرد. پیغام ارمیا و این انبیا در دوران اصارت این بود. خدا شما رو بیشتر از اون دوست داره که بتونه ببینه هر روزه با هر روزه شما تلف میشید و هیچ بیداری روحانی ندارید و مثل یک سگ زندگی می کنید. خدا اجازه نمیده که شما به این ترتیب زندگی کنید چون شما قوم او هستید. وقتی که به اون سی دلیل کتاب مقدسی که چرا خدا اجازه میده قومش رنج بکشن نگاه کنید، تنبیه یکی از اونهاست که بارها و بارها اتفاق میافته. در کتاب ابرانیان باب به دوازده پیغامینه، وقتی خدا شما را به خاطر گناهانتون تنبیه میکنه و شما را وادار میکنه که رنج بکشید اون رنج تعییدی بر این هست که شما یکی از فرزندان او هستید. شما به عنوان والدین شاید وقتی فرزندانتون اشتباه کنند اونها رو تنبیه کنید چون که اونها فرزندان شما هستن. اما بچه های همسایه را تنبیه نمی کنید چون فرزندان شما نیستن. نویسنده کتاب ابرانیان می میگه که این نوع تنبیه و رنج ثابت میکنه که خداوند پدر آسمانی شماست. در این متن ارمیا یک حقیقت کتاب مقدسی رو معایزه میکنه که بارها و بارها در کتاب مقدس بر اون تاکید شده. در باب هفتم کتاب جامعه سلیمان میگه در ایام کامیابی شادی کنید. وقتی که از یک دوره موفقیت عبور میکنید شادی کنید. در روز بدبختی این رو بفهمید که خداست که هم این و هم دیگری رو به وجود آورده. به این دلیلی که سلیمان میگه رفتن به مجلس نوهگری بهتر از رفتن به مجلس جشن و سروره. چون در مجلس ختم شما به ارزشهای ابدی فکر می کنید، به خدا فکر می کنید، به زندگی و به هدف و مفهوم زندگی فکر می کنید. اما وقتی به مهمانی میدید به چیزهای روحانی فکر نمی کنید. پس سلیمان میگه رفتن به مجلس نوهگری بهتر از رفتن به مجلس جشن هست. وقتی روز بدبختی میرسه دست خدا رو در اون بدبختی ملاحظه کنید این چیزیه که ارمیا در کتاب مراسی ارمیا گفته این بخش اعظم پیام او در پنجاه و باب کتاب نبوتی و همچنین در کتاب مراسی ارمیا هست او دست خدا رو دید که قومش رو تنبیه میکنه و از اونها ظرفی تازه میسازه این اراده و وعده خدا به اونها بود که بابلیها ها حجوم خواهند آورد و اسارت تنبیه خدا به خاطر گناهان اونها است. تا در عاقبت اونها قوم بهتری بشن در کتاب مراسی شما شرحی از اون ظروف بازسازی شده را دارید اون موضوع در این شاهکار شعری الهامی به زیبایی بیان شده اونجا که ارمیا میگه خدایا تو قوم مرا فدیه دادی وقتی ارمیا این رو موعظه میکنه که ما با تجربه تنبیهمان ظرفهایی از نو ساخته شده ای هستیم منظورش همین است آیا شما محبت بی قید و شرط رو تجربه کردید؟ اگر نکردید امروز از خدا بخواهید و بگویید خدایا زندگی منو با محبت خودت نجات بده. فقط یک خدا هست و اون محبت کامله و میخواد که شما رو شخصی تازه کنه. باید به گناهانتون اعتراف کنید و محبت بی قید و شرط او رو بپذیرید تا شما رو نجات بده. پیغام ارمیا نبی این هست که خدا امینه. زمانمون به سرعت به پایان رسید. اما درس امروز با چه حقیقت خارقل تمام تموم شد؟ عهد جدید به ما میگه خدا انقدر شما رو محبت کرد حتی وقتی دشمن او بودیم اون محبتش رو با دادن فدیه و ریختن خونه تنها پسرش عیسی مسیح برای نجات ما نشون داد. محبت او بی قید و شرطه. فنا ناپذیر، الهامی و مقاومت نپذیره. خدا رو به خاطر محبتش شکر می و این هفته این محبت رو با دیگران تقسیم می کنیم. تا برنامه بعدی محبت او شما رو دربار بگیره و به شما قوت ببخشه.